باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك انو سيندا كتابي مجاور من جمر نسيني حجر بكرياني علي مارکردنی کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشوی سلافتان لبیت خوشحالین لبشتی چلوسی خوین نوی کتی بی چشتی مجاوری هجاری مکریانی حتی نوی خزمتی ایوی برس فرمون لگالمن بند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 هر گاگیش تیه جگه ایکی او هوای اوی لید ده جه توا. منشکاتی دیل وان بسر هد. در منی بونو سیمو حتمو شونی خوم. لطاوی تا دم نالان. زبیحی دوشکاقی لیفش کرد بوموا کوتسر زوی. اویش لو دمه دا گالتی حات بو. کچیکی باریکلی گنم رنجی المانی کناوی زگری تا بو ترجمانی دا کردین. فرانسی و انگلیزی و اسپانی دا زنی. هند روح همون روش تلفون من بو پراغ ده کرد وطنع لماسكو ملا مصطفى بارزانيش بو من ده حول ده بلام وقتی وستیوال بسرچوا اما هر لبرلین ماين زبعه فیره شاترنجی کردم و روش من بشاترنج کردن راده بوار دی بوم که چه لأوروپا کمو زوریش زرد دخونه و قوریه کم پی بو بو خو من چه عراقی من لینه چه دکرد چه دانو دنبرد اوی کولیوان بو بسرده ده کردم روش کاکا. توب چو اوی کولی ورګره او شوتی ملا من نازانم بلمچی بوتم ز منی ناوی کتریل اثر فرغاس د کولې لی پرکه وتی اخر نام دنه پرم بقوری دا ګر تو چو محسر پیرژنې چې قنقلوی توپل رابرد غرم ده دستم لشانې ده وتم شلخن پلخن اوی کولا وخن دستو پیت بریبا وخونه ده ته هر لی ورګرتمو پریکرد ل اوی گرم لگه عربی عراقی به نوی حغنام غنم کلام وابو اویش سلیم شاهن هر لورگ لوراندن دکر را حات لامانو بوی نسیه کس لوتاغ کدا دانشجوی هندسی معماری بو رو جانه تماشای سمیل مانی دکرد ده برای من لا سمیل چپت لحی راستت کرد تره منیجدم گو او برراستی مهندسه شهر زای زور عقیده بزانهی به حیبو جاریک لمنی پرسی ما لكام دانشگاه زبيحي درچوا واتم لدانشگاه ترکش اوش واتي باله باله بخوا دانشگاه كي تاكا خواه ناكرا بلهم ترکش من بيستوا پردهيك لجوريك حلواسره بو سرمن پیدا گرد فالح غنام دستی دناو قلي زگريتها دابو دمشان بدميه کوابو فالح حاتو تدر سوين دخوا امكششوعيو زور داین پاكا خيالي خراب مکن منش واتم نا نا کاکا فلاح د ځانین تو د تويست هیل کې لرينی د نا فکری کې ترته نه بو کابرای چې بالای ملک کورتی ايراني هاته دیدنی من وتی من اغا یزیدم جنې شي المانیم هناو د هنم بتنبینی بوتم لازم نکه خو پک تنبيه وتی بخوا هر د هنم جنې چې لبر تاو حلناي قاج باریک لاواز د در دو هاتو دستي د دستي نه وتم یزیدی کسی دست نکود او تجیراتا نبید و تی تو خواستا برقصب که جنکم توزی لفرسی تیگه هرکا چوین مدرسه که دوازده مرکی المانی غربی من ما بود با قطر چو من برلین غربی گاری ما بچلو هشت مرکی شرقی و قچاق چیتی که باش بود اوش زگریتا فیری کردم دیار بو کونه کاره هشتا فیری او خواردنی دستشوی نبو بوم شوگوتم دچم داره لیوانک ابجوده خوما و ت زبیه گویی زور زوره وا نگران دم تاو دوای آب جون نکرده بو آلمانی که 100 کیلوی پالوان ویی عرب کایرو بسر گوییم باله مچه کی گرتم دادگوش کندی ود کای کن بوه نم ود یان بیخو ود دستی تند کرد آی آی دستم خورد با ورکال دم موسو تندی تناوزگم ود یان نجیتر حاصل بلی ندان تاسې پیلای بگرو اخر دم اما توماس اس اس سی هیتلر بو ول قهيره حبس کرا او بوینه خزم بتکای بارمنکه بریدم حت موعلق من قستې دکرد زبهیت وربو وتی کاکل شو بو وام زانی ګوم بو وته مهتیم خزم پیدا کرد وقسمه که تخته نوستم تا روز درنګ خبرم نه روش یک لو تلفون کردنه دا، خاسم لو ادرسی نو روزی نویشی داینه و تی پیمو توه کارتن با پیک بینه زبیحی و منچوین لسر جاده لترام دا ادرس من ندیتا تو. دسا جاری باب زنین لمالا، تلفون اک من لسر جاده و کل و تی بالی لمالا، دلی ورن، دای خستا و و بو نت پرسی چون مالکت کت بدوزینه و زبیحی و تی آیا راز داکی گرفان من گرهن دفنیک من پینه بو تلفون بکینه و دیسان ویال بوین تادوزی منه و شیطان گوتي چق اعرق کردو مندو دو سلامون علیکم ترانی که بالا برزی لودبرانی چوار تلفون لدورت دادگوت علا عزرته بمینگه که ترانیانه و پرسی دلین چی لستر جواب محتل نبود تلفونی که هلگر وقتی بوکچیک دادنه دیسان گوتيه و بله چتان گوتي او جر به تلفون دا فارسی زمان دا جهجوانیان داری کرد. پشان ها تو سر مسئله مووتی، ها، چتان فرمو؟ پش زمان لوسی و تعرفه که خست و خوز نوکو بدی حال خومن با باز کرد. بلا ام اول بر تلفون هل گرد نو دانن زور که می جویلی بو. قاسم لو بولای توی نردوین که بسی امی با کردوی. قاسم لو نه ناسم، چیا؟ لکویا؟ وطمان کرده و لپراغ استاد و تو کردشیا ظر تازگی های بومن قسم لوبونشی تو ایران لبرگت شد که وتم باب رو این به فایده زبیحی دست پیکرد با خاطر نوع پروری انسانی تو چی و چی کلی پیکنین مهستاو خنبو نجیره درک اوتم زبیحی بدوانده هد و تو اری ملا آو بو پیدا کنی وتم کاکا اینن سوال که یک مهاتبرچاو کبکافیه بل. بو خاطری غلیفه این درقاش لیرکی زیرم ده زبی حله من پتر پیکنی خیری اوشمان بخشیو او. موسکو ناهمیت بو بوین دبه بروین بو بچی به چی قلیش گوم نه نگین یتشم سفرت مفارتی کی سوریا، مصر لا برلین نی کنسولگری باب چینا بون. خن خوکان من کیسه یک نانو پنی گندای نیو سروسیو بلیتی قطاریان بو برین داینی. بون بگرو حاتم ای بدبختی، جه لقتر دست نکوه، دبه کوریدور ده 600 کیلومتر را بیارین، هرچونه بو سینم لواگونه که شش نفری جننده خوی سپن. ایمه جگه قنگلفز داده نشمنه بو، سر مابو بردم برده میخوام وک عربان حل پیچه بو، چوم لبرنبری اودست لسر عرض دانشتم، زبی هیش هد، دو کچی هج نو ساله لپست دهت نا اودست، لم مور بو نوا. فشت یکم لیکردن زیران دیان ایتر خواوت حسینی قط مناع لیک بلا من بلانبونی او دستکه پیاوی ورز دکرد هرچون یک بو او شوشت من گوزرن دالین دو کابره سوریایی بزستان زستان روتو به هر دوکان لیفه ای کنها شو بخوای انداده دا روش لبرتاو دشان یانوه دا پیچاو به بریوه حل دلرزین به هر هد یکی انگو تی زستانکه من بله، اما و تی لیازګی کولون د بزین غرد سر ټلیفون ټلیفون نامه سرو بنکه سفارت سوریه لبونی هیڅ چټک لوه تالتر نه بو هیزیدل مننه او بهانسه سردی تماشای یک تر منډ وتم ادي سفارت مصر چی وتی هه پلم کی جواب ایم عادتوا وتم د با تجربه کین خولې ما نه دن مصر جواب دی او بلې صبیح وتی دخیل یم سوریایی لقام سفارت سوریه لبونی چرمن عیشویی من نام عبدالفتاح دیدی لقیان استادیم زبیحیویی جا چونت بناسین و تو یکی رش و قیلم رشهاهات و تو جاری هیچ قسم بر دینی رستورانی ازجا بر چایی شهری پنج مرکی لسرمیز دانا و تو اول گرند یه مشوق من نه با خواقبول نکن و تو برای چون کد زنم با پنج جدگان سفرت سوریه آمدم ده دنات دبواز زورتر له ختیج مارشوار سوربن پنچ ایس گای اتوبوس به میرندابزن باغچه کیسوشه سفارت سوریه لبه پاش چند سال به من درکود کدیدی داستانوسه له زور شوینانیش بوته سفیری مصر تارکن نوی بعد گودز بیرگا با نشانه گینا بردرگای سفارد لوی داوتم راوستن، جاری مچن، چو سفیر بأسی سقبابنیه، چو زن در من نکا، اگر بزنی کوردین هر بگرتن من نده زبی دیسا قررشو بسر داکن، لسر خوا، سری خو من داکن نکوتک، درشمن که لسر رگای ماشینکه راده کشین، با بسر من دا بساطر سؤال زد و زنگی در کمان زرند، چنینی آلمانی درگیر کرده و سالنی که شاندای، دانشتیانو چه آنوری چاره نوستن، کره کی عربی حالا بیله و بو، دیگود علیزم داد و پولم دنیا جنبیم، ایواش تودگار تندی و، وقت من باله، وقتی نشون سری کارخانه مرسیدز، وقت من نه والا، وقتی بزای عمر تند بزش و، کره چون پیاوس سری ولکیس خوی ادا، همی دو مارکیتیاتو، وقتی هستن و بر شقیدم. حزبم امان نابو بیا خوين شش مارک مندا با سری مرسیدز لو دمد بانک بانکرا 4000 لیتر بو بهره او جندن با عربی فلان فلان شوده با سفارت گدا خانه هر روز چند دزبری وقت پیدا دبن. و ما و. و ده بن ی مشوتمن قربانلی من قوماوه پول من نه ماوه توش به و راضی نی دته وجنی المانیت بوبینم های دی لبر چام گومبا تانم گوتو بد کردن حتی خرتو پرت با خدا ایمش باو درده اچین کابره ای که قلاخره دمو چاو گرد کهیز پیمانوانه بو سفیره هاد لبری حل نستهین. و تی بخیر بین، و سلامت بی. اوش و تی فرمایشت، و تمن سفیر من دوی. دانیشت، و من سفیرم، فرمون. و تیم جنب لبیروت هوا در چون موسکو، او چی روکمانو ناشتوانین بگین سوریا. پرسی هر سیکتان کردن و تمن بله. و تی ک وتمان قربان چوشتی و فرموی و چی بو چی هر استه انگوس یو من یک اکثریت بنگو وتمان وتمن املی قوماوین پنامنه ناوه چون تو دلت برواعد او تر زمان بدوینی سیفروتی من جار کوردیک ل اعدامی نجات داوم جیانم لو کرده و زانم هر چی بم بکری تقصیر تندگل ناکم وتمن کوردکه چی بو دکریه بفرموی حناسی کی هلقه ش وتی های جلادت علی بدر بو خوا رحمتی لیبکا، لطفا فرانسیان حالا تمک حکمی دائم دارم. دو ما لمالکی خوی شد میوه، تا عفیبو سندم. مطمئنم خانم، کجی جلادت بدرخانه؟ واقعی بردوا، بانجی کرد، خانم، وردیاری کن بوجه نوی. خانم لب لکنان حتا خوارو چایو بسیم کرد. موتی سینم شگرد خوش است کم، کامفریش توجه اندمن. بوبا فلتوهار مچ خانم سفیر لشام استاد حقوق بو او سینملای او درس خویندو سینمی بردو روی سفیر کناوی ابراهیم استوانی بوتی د زانم با سینما زور نه راحت بون او لمال من دبه ای وژ دنرمه لشام د پرسم هرګه بریا ری انده کپتان نرمه وا ل سر خرجی دولت د چنوا کی زور سفیرانی داینی سر 20 مرکی نقدی دینه که من پولی بیو حقی اوتیل لسر سفرت پرنیو را با ترمبیلی سفرت شوی ن اوتیل آکی کی خش پلانل لسر لیوی چوامی راین هر جوری تختی که دونفری لیبو هموش هشت و تقبو و تقبمان با سینمگرد کاروش لسفرت لای خانمی سفر بیو شو با ماشین بیه نو اوتیل امش لسر دعای خم ان بر جوری غازی بونی بیلامانی وقجنمیر لسر تختیک بونی چوونکله دوکان قندو چاو نانو پیخوره بکرین شوشه شراب الزاسی گردن بلندی لغبن بشوار مارک هر زانه زوري شم درد ماندو سر مادیوا یک یک د کرم نه یالم بکری وت مهتی وبوتشی لبیس مارکی خومی د کرم ملا نه یالم بکری من شوتم جاء و د کرم تو پیاوی ازای مهاله شرط به پشت د لزکد نرم تر دکم بو من من دالی بردستی تو کریم و ببی او یکتر بده انین هاتینه وجورکان مانو دنګ مان لګورې چو مسر تختکه په تو بسر لاقان لاقن حل کېشه سری کرده و زبیهی کلم قالسه پښته دمنو روی د پنجره به پی او وستاو به دنګ ناخوشي ک د دغد میز بتنکه ددکه حافظ د خوینه ته و روم کنه لا بر خوېوه ملا او همدې خوېوه او تنبتو شي او تی اخر ملا وهو هموى حال تيكه دا وتم تو پیم نالای چه کارت بمن من خوم دا کشم بطو چی پشتاو پشت لیوانه کیل دست دا با پید زه لیم نزیگ بواوا وتی ملا خود کر مکه بساری باب تو زه کم با تيكه منی جوتم یخوه اگر با تيكه هم غزه بی عرض و آسمانه لی بباره دمی بطلم بلیو مواناو قرد قرد ملم لینا وتی ملا دم ری تو خو تو زه کم با بیال قرطم لبوت البریو پتوم هلکیشو نوستم، لعواره و تاسعاد دی بیانی یک بینخوتمو و خبر نهاتم. هفته جاریک سفیر نیو روژه داداینی، وقتی دی در چوین چشت خانه و هر پتاته کلاو گوشت براز بو، جاریکوت من کی که دی بخوین، زبیحی دستی لسرشتگ دانه، بگرسونی حالی کرد، اما هشت هلکه نیم رویان بقا پک و هینا، با دست بچو دواینه نن من کرد دو گز مولانانینه نه حوتی پارو یک نه پارای نه و من بو شرخه دوا ددغو تبلیغات خمیر داندند دکین. روی جوت یک پشکلی دیکه بو هیناینو به سرغوتی بس بیست من ک علی حیدر سلیمان سفیر عراق او لشاری گودز بیرگا و تمزه بی حباب چین منشی گوتی وخت نه ممنوع بچن لکه غز کوردی خو دو کس سوریای هاتونه و تم تکه بیده هاتو جویی فرمن و تو نو سیو تانس من او کسیم لبنان بحنس و تو هجاری لی رتش دکی و خود بلا و استامن دیکم حالو مثلا آواه که هست این روانی صد مارکی تدابو و تو هر بیانو جاری امکام مملکت بولکن و تم نه منو و تو دبی ورمان گرد سرو سیو سی مارکمان پی برا ایتر ولای، نوالای زبیه روژه دو پاکت جغاری چستر فیل دیده کشا دی کرده هشت مارک نم دویز پاکیب کهوه خم سیغاری که بلگم دکری با مارکیک ددانه تدابو حکمیله کردون ملا ام جغارت باگنی دی بچو لدری بکشا منی جوتم های hey دین سز من بو خاطری تو و تو درم دکی پشیمان ب كوابي بن بگرانی عزیزو خوشویزد یر دابم شوای حتین کتایی بشی چلوسی خوین نویک تیبی چشتی مجوری هجاری مکریانی تا بشی کترو شویکی تر پیتندگی نوا شوتن ارم.